بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واده وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات التوفيق الله جل شأنه ان بكن ما تنسي مواقف ايمان رو سفري بكونيم مخالفين اهل السنه رو هم شناختيم از مرجئه گرفته تا خوارج و از ائمه بهشون تهمت زده بودن ازشون دفاع کردیم میاد بازم مباحثی که بایدم بازم از ائمه اعلام از ائمه اهل سنت بازم دفاع بکنیم بحث اینه که ما بر به کتاب و سنت مشکلاتمون حل بشه به نفس خود قران این تنازعات و قضیه علم فرجوه الی الله و الرسول و هدیه خداوند که اونم قرانش برمیگردیم و سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم. ما در مسائل نمازی که بود در مسأله ایمان که بود ارجاکی بود، کم و زیاد شدن ایمان که بود. برگشتیم به لصوص قرآن و سنت و مشکل منخرش رو دیدیم که ایمان کم و زیاد میشه. ایمان فقط به درجات هم نیست. برخلاف قول مرجعه ای فقط تصدیق شناخت کافی و برعکس برخلاف خوارج هم همشینی که گفتن ایمان اگر یک تکه اش همش از بین میره. همه این مسائل الحمدلله سفری کردیم الان اومدی به بحث توحید. بحث توحید حق یکی از بالترین فرقود خودمان بر سر بندگان ایمه بحث توفید رو که می در ضمن بحث ایمان رو واردش می کنند مثلا امام مسلم می بینیم اسم یک از کتابهایش یکی از مباحثی که در کتابش داره به اسم کتاب ایمانه که در ضمنش مسائل توفید ذکر می کنند خب یکی از کروه کروه ایمان همین توفید رو خودمونه یکی از کروه ایمان چون بحث شنافت خداست بحث حقوق خداونده که بر به همون ایمان وقتی که میگیم ایمان تصدیق و اقرار به خداونده خب پس خود توشیدم شامل ایمان میشه یا خود ایمان هم شامل توشید میشه خب قبل از اینکه ما این باحث توضیح بدیم انواع توشید و قبل از اینکه مباحث در مخالفین در همین توشید رو ذکر کنیم میپردازیم به خود این توشید امرن در, در لغت و بعدن در اصطلاح که به چه معنی است توشید در لغت گرفته شده از وحده یو واحد و توشیده وحده یو ای, ای, ای, ای جعله واحده یک چیز را یک تا قرار دادن بهش میگن توشید یک تا تک یک چیز را تک و یک تا قرار دادن بهش میگن توشید اینکه. امام جوهری در کتاب اصطحاها بشه اشاره بیکنه علامه لغت خرمه سبب نمیدم چه رو امام جوهری هم میگه توحید امام جرجانی ببخشید یا گرگانی خودمون میگه که توحید در لغت الحکم بان شیع واحد و العلم بان با نه واحد توحید فکردادن به یک چیز یک چیزه یکیه یه همون یکتاب بودن و یک چیز بودن اما در اطلاف خیلی راحت شاید همیشه هم ذاتو سوال بکنم شاید هم یکی از مباحثی هست که گویا همیشه همراه همون باشه به با عدلش هم باید فکر کنیم توبش در اصطلاح یعنی اقرار به این که خداوند خداوند مستحق یا افراد ببخشید به عبارت دیگر افراط قرار دادن خداوند در ربوبیت یا تک قرار دادن یا یک تا قرار دادن خداوند افراد و تک و یک تا همه یک منا دارن تک قرار یا یک تا قرار دادن خداوند در روبیت و الوهیت و اسماع و صفات حالا من یک مثال میزنم برای تقریب ذهنی برای این که این مسئله واضح تر بهتون بشه سوره فاتحه که شروع میشه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین هر سنات رو که کلام ما ذکر کردین درش هست الحمدلله رب العالمین رب پروردگاره برمی‌گرده به روبیت اقرار به این که خداوند خالق و و مدبر و مالک اقرار به این که خالق مدبر و مالک این ستاوت جامع خالق مدبر تدبیر فلنده یعنی کسی خلقونه باید تدبیر بکنه خرشید و خلقت کردو باید مسیرش هم مشخص بکنه انسانو هم اینطور مدبر و مالک مالکشم هست همیشه دست خداونده هر کاری بخواد میکنه هر هم بخواد خلقت میکنه خداوند خالقه چون خلق کرده هم مال خودشه از خلقش خارج نشده دستم بالا میبرم خلق خدا دستم پایین میبرم خلق خداونده از خلق خود خارج نشه من فاعلا من خالق این عمل نیستم خالق عمل کی خلق خیرده این فعل من، خدرت من؟ خداوند اگه خدرت در من گذاشته، این خدرت در من خلق کرده. پس مالک همه اینها خداونده. هر رحمن الرحیم اقرار به اصمه صفات خداوند. خداوند از همون راحیمینه، خداوند صاحب رحمت کله. از رحمتش ما را خلق کرد، از رحمتش فرشتگان را خلق کرد، از رحمتش همین شیطانی که ما بدش بیبینیم شیطان را خلق کرد. فکر میکنین که شیطان بده؟ اگر شیطان نبود دیگه جهادی نبودا، دیگه مردانگی نبود، دیگه جرئتی نبود، دیگه مرد از نمرذ دیگه مشخص نمیشود، منافق از این منافق مشخص نمیشود. همین شیطان همین که پرچم توحید و پرچم جهاد بالا میره. همین شیطونی که سبب میشه من و شما خداوند را در سینه دل بشناسیم، از اختیار خودمون حقش رو به جا از همین صفاتی که انسان متوجه میشه غفاری هست، اگر ابلیس نبود کدام یک از منده میدونه که خداون غفاره خداون ارحم الراحمینه این صفات مشخص نمیشد حالا میمونه این مباحث به قضا و قدر که آخرین مطلب از ما صفات که خواهد اومد لیکن الان اون چیزی که برای ما مهمه اقرار به صفات خدا از ما صفات خداون اون صفات که خداون داره بدون این که مثال بزنیم بدون اینکه که کیفیت بهش بدیم بدون این که اصلا نفت بکنیم مثلا کلا از خدا, مثل اصلا صفات اصلا اصلا صفات خدا صفات نداره. خب تمامی این موحف بدونی که مثال بزنیم مثلا بگیم که خداوند دست داره مثل ما یا می میبینه مثل ما این موحف رو من سریع الان رو بور میکنم لیکن مفصلش خواهد اومد ما میخوام پله پله بریم فقط الان توضیح و شرخ الواع توحیده اقرار گفتیم اقرار به بحثانیت خداوند در رو ببیت در اصماتفات و در الوهیت که مرتکز دعوت انبیان ایا که نعبود و ایا که نستع هدف الرساله هدف هدفها خلق وما خلق الجن والانسه الا ليعبدون هدف خلقته مها نشسته له ما داخل جوا شي بوده عباده الخدا وعده يكو بعثنا في كل امه رسولا ان اعبد الله واجتنبوا الطاغوت دعوه انبياء هم هدف شي بوده توحيد الربوبيه وتوحيد العلوهيه خدا وعد اقرار بان خدا فقط تو ملحق عبيدك تو بسرتش بشي وتو بد هدف مؤمنان باشي اين سنه تو هيت در جمع شده و در دیگه سوره های قرآن و در دیگر سوره های قرآن قرآن هر سخش برق بزنی توحیده یا بحث از بهشت و آخرت که آقابت موحدین و گناهکارانه یا بحث از سیانبرانه که برای توحید جون کندن و کشته شدن و دعوت دادن و اذیت آزار دیدن یا توحید در قرآن بحث از صراحت میکنه اعبد الله ولا شریک به شیء فریحه دستور به عبادت عبادته حق خداوند یا بحث از صفات اسما یا بحث از ربوبیت خداوند هو الذی خلقکم و, خلق و فی الارض جميعا همه اینها برمیگرده آخرش به چی به خدا خدا قران پر همش خداست قرآن پر همش توحیده همش قرآن به خدا بر يكتائج. يكتائج خدا به یکتایی یکتاییگی خداوند برمیگرده قل هو الله احد Allahus Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad in tamami maani towhidi ke dar quran umade va quran dar bar gerefte in maani towhid ra mimune mabhasse ke qabl az in ke anwa towhid shuru beshe va pasi ke muhim be va onam in ke yek bande ki mikhad mo'min beshe yek bande ki mikhad mo'min beshe bar sireqe che adleye باید خدا من را بپرسته حالا از عقل از نقل از حس از نمیدونم نشانه هایی که هست تمامی چیزها فقط ما مثلا باید که برای ما مهمه چه راههایی هست برای شناخت خدا چه ای برای شناخت خدا هست و خدا من چه عدلهی گذاشته بر این که ما بر ما اقامت حجت بشه و فقط خدا من را بپرستیم عدله زیاده هرچند که وجود خدا نیاز به دلیلی نداره اف بالله شک اف بالله فاتر, فاتر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ابراهيم آيه 10 ابراهيم آيه 10 اف شك آيا در خدا شکید خدا شکی درشت نیست نیاز به وجود با وجود چون انسان های احمق و نادانی پیدا میشن که وجود خدا را انکار بکنن طبع خودشون طبیعت خودشون فطرت خودشون را انکار بکنن به خاطر همین تا گذاشته در آسمان و زمین عدله و فی فی افلا افلات و بسیرون تا گذاشته عدله برحان اول سریحترین برحان و ترین دلیل بر وجود خدا شهادت خود خدا من بر وحدنیتش شهادت خود خدا من بر وحدنیتش شهید الله انه لا اله الا هو اس شهادت خود خداون بر وحدانیگیش هیچ کسی نبوده اگه گفتم من بر حقم بوید منو فرستید بوده اگر نبی بوده که شهادتشون بر حق نبوده بنده ای بودن که عاجز بودند در مقابل ابراهیم نمرود عاجز مونت نتونست خرشید را از مغرب شروعش بده فرعونم عاجز موند و کشته شد و غرق شد اگر می کنست خودش را نجات بیدار پس نبوده که کسی بیاد ادعای خدایی بکنه و باقی بمونه تنها کسی که باقی و 124 هزار پیانبر فرست داده و ف... تنها کسی که فقط ادعا داره و ادعا داشته از قبل و از آدم تا حالا فقط خداقند یک بود کسی هست مرد بیاد ادعا بکنه که خداست چقدر قدرت داره و چیکار میتونه بکنه آیا میتونه خودشا از مرگ و مردد نجات بده یا نه بس بالاترین شهادت ها شهادت خداوند ہے خل ایوشی اکبر و شهاده خل اللہ و شهید بینی و بینكم خل ایوشی اکبر و شهاده چی دیگه شهادتو گواه بولتر از گواه خداوند میخواهی تیگه چی دیگه بولتر از گواه خداوندی دومین شهادت شهادت ملایکه است؟ شهید الله أنه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالشهود مش ملائكه بس دومیشم شهادت اولو العلم شهادت اونهایی علم شرعی دارن شهادت اونهایی علم شرعی دارن از تو سال 1400 توله که علما دارن کتاب بنویسن از شرع مطهر از اسلام دارن دفاع میکنن آیا اینها حق نداشتن آیا این 1 میلیارد کردی مسلمانو که در دنیا هد همین جوی عقل رو بپرستن آیا برخلاف فتره تشون عقلشون در انعمل می کنن همه این ها جز ادلی وحسانیت خداونده از جمله شهادت ها شهادت پیانبران خداونده و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی ایلیه انه لا الهه الا انا اعبدون الا انا اعبدون اي انبييا 25 وما ارسلنا من قبلكم الرسول اي شيء ان له اليه انه لا اله الا انا تعبدون وهم جميعنا لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت دعوه تمامی انبياء دعوه التوحيد بده بس هم بر وحدانیت خداوند و سنت متحر مصطفی صلی اللہ علیه و سلم هم گواهی بر این مسئله و کتاب های آسمانی هم گواهی تو راست بگیر انجیل هم بگیر از جمله براهین و عدله بر وحدانیت خداوند شهادت عقلات حتی که عقلشون سالم نیست در خیلی جهالی که همین اشخاصی که به اسم فیلسوف و به اسم نویدونم زانشمند اونها را میشناسن کواه اونها هم کافیه کواه اونها هم کافیه کافی که نیست که یکی از ادله و براهین بر وحدانیت خداوند عرستو و, و سقرات و عرستاتیایوس و نویدونم فیساغورت و اینا همه ای که از فیلسوفانی که بودند از ریاضیدانانی که بودند در روم در نویدونم اروپا و غیر همه ها اقرار دارن که باید خدا باشه لیکن حالا بعد اختلاف کردن در اینکه خدا چطور باشه و چطور نباشه و نمیدونم ارسطو میگه باید نهجت نباشه چی میخوان بگن این فیلسوفی میخواد بگه میگه باید خدا باشه و خدا هم هست لیکن حالا نمیدونه خداش چطوری هست میخواد برای خدا شکل و قالب بده نمیدونه نمیدونم قیاس میگیره برای خدا بعد این مثالی حالا جای خودش داره لیکن مهم اینه که در تمامی ادیان حالا چه صموئی چه قرثونی همین بودا یک خدای رو قبول دارن بوتوری بوتوری نمیاد اصلا بس خدایی هست پس بس خدای خدای, خدای را رسیده بشه همین مشرکینه قرش قُل مَن یَذُنُ مِنَ الْمَاءِ وَأَطْعِمَنَا فلان تا آخر میگه پس یقولون الله پس یقول اقرار دارن به اینکه خدایی هست صدرت یقوم قریشه ابو سفیان اقرار داره نمیدونم فلان اقرار داره اقرار دارن به اینکه خدای هست و خدای باید باشه از جمله براهین یا برهان ها برهان خلق یا خلقت خداوند که اگر این مبحث رو واز بکنیم هم شیرین هم جالب لیکه این مبحث رو علما گذاشتن برای هوا آدم جاهایی در سخنرانی بهش اشاره میکنه یا در بلاخرین بامیعزهی سر کلاسی قدشه جا ها جاهایی از باب نگاه و از باب شکر نعمت خدا که انسان نگاه میکنه مثلا در خلقت خدا اشاره زیاده در قرآن الَّذِ جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَاشَ وَسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَبِمَنَ السَّمَارَاتِ رِزقًا لَكُم این نشان ها باران می باره نگاه بکنید چطور سبزی ها می رویند. نگاه خورشید بکنید. و شمس و القمر قسمم می خوره به این شمس و قمر و فی انفرسکم افراتو بسروند. در نفس خودتو نگاه بکنید. نشانه های خلق زیاده. تدبر بکنید. در نفس خودتون غذایی که می خورید. می به معده حض میشه آب با غذا خاطی نمی شه. آب تبدیل به ادرار میشه میره به کلیه هیچ وقت همراه مطموع بیرون نمیانه این نظامی که ای سی سی داشته این خود چشم انسان چشم انسان چیه؟ سلول نمیدونم پروتون و نوترون رو نمیدونم این چیزهایی که ساخته شده ملیارد ها نه ملیارد هاسته ملیارد ها سلول در یک چشم رو نمیدونم در یک همین مردم ها که چشم قرار گرفته که در روز در روز در فقط یک بدونش تلف میشه یک میلیون نمیدونم چقدر تلف میشه یعنی مخلوقات خدا بی بی‌حرز حسابه یعنی انسان فقط نگاه کلیش بکنه نگاه جزئیاتش نکنه همین کلیاتش خب این انسان این انسان کوچک زمین چیه دیگه انسان از دور به ما بله از دور از مورچه کوچیک در خودش رو ببینه چه برسه به این کره زمین چه ورته نسبت به خورشید که میلیون ها بار از زمین بزرگتره چه به رسید بهقطشان را چدی؟ چه به رسید بر رو تار و نمیدیدم مشتلی و نمیدمدی دیگر از سیارات و سستارگانی که هستن چی هستن این مخلوقات؟ هیچی ورتم نمیاد هم کهده خیث که قبل هم به شاره شده که آاتمون ها و زمین ها تمامی, هف و تمامی این هفااصل هو همان تمامی مخلوقات مثل یک خلق در یک در زمینره پناورد در مقابل کرسی خوددان و کورسی خدان در مقابل ش خودن مثل یک خلقه در یک در زمینره پناور ریزیشو نگاه بکنی چی به حسام بیان؟ در ذهن انسان خود انسان اگر فکری بکنه توجهی به داخل خود چقدر تنظیم چقدر نمیدم این دست دیتون حرکت میکنه یعنی این همه سلول این همه نمیدونم فلان اونه همه تنظیمات بدونی که از ردش خارج بشه خورشید به این بزرگی در آسمان ایستاده یکم پایین نمیاد این زمین چه توازنی هست چه هست؟ چی چیز این زمین رو گرفته که کم پایین نمیاد یکم عقبه یک روز یک ثانیه کمتر نمیشه دقیق داره میچرخه یک شبانه میچرخه سر جاش بر میگرده چطوره که این زمین تقلقی نمیزنه یک ثمیه عقب نمیزنه یعنی اگر انسان نگاه بکنه به شمس و القمر رو مثلا به شسبان به شسبانه نمیچی یعنی حساب و کتاب داره هم ماهش کتاب داره اگر حساب کتاب ندااشت چطور میفهم کی میگیرید وکی نمی ببینن فلانه. همه اینها نقش داره هم در جدر و مد آب ، هم در رسولوزی هم در شناخ باز و هوا. همش حساب و کتاب از شمس وال القمر رو بهدان حساب و کتاب داره برای خودشه. نگاه بکنید خورشیددی به این بزرگی. انان خود ببت بالاا نمیگوونه روی هوا. چطوره که خورشدی به این بزرگی بین انجز است. که ملیاردها بار از زمین هم در حوا فقط استاده در هوا در ایک خلق که هیچی نیست داره روز روزم منفجر میشه در اثر انفجارم حرکت نمی چرا حرکت نمی کنه, کنه کی اونها رو گرفته غیر از خدا کسیم توانه فرشته و توانه من شما میرسه توانه هیچ کس نمیرسه میخواد بگه خدا بند نگاه این خلق بکنید سبحان اللی خلق الادواج كلها؟ میتون به تول اوق و من فوسییم و من ملای علمه نگاه بخورید ازدواج زوجیت وهدایت خاست خداست شما همه در روی زمین باید ذکر اونف باشید. از در گرفته مورچه گرفته انسان گرفته از همین سلول از همین پرووتور نترون دو تا قت مخالف مثبت و منفی. همش زوجیت بدون مرد ذری نیست و زنم بدون مرد نیستید. همه با زکر اون اونسا باید باشه در مخلوقات هیچ مخلوقی هیچ مخلوقی نمیتونی پیدا بکنی بدون جزء قباله بشه چی میخواد خدا من با این مخلوقات میخواد بگه که من فقط واحدم قل هو الله احد لم یلد ولم یولد خدابنده که فقط لم یلد نمیدونی اومده ولم یولد بده هم بچه هم میذایه ما اینکه باید بزای ما اینکه بواید بچه بیاری ما این که باید تولیده نصد بکنیم تایی که حبز بشیم خداوند نه نیاز به کسی داره و نه هم خداوند به دنیا آمده خداوند مستاج کسی نیست نه مستاج من و نه مستاج شماست این عظمت خداونده این قدرت بی پایان خداونده به خاطر همین خداوند دستور میده که ما نگاهی به مخلوقات خداوند بکنیم سنوریهم آیاتینا فاق وفی فوصهم حتى لهم نخ الحق سنووریم آ نه فاق خدان آادشونشون میده اون شخصی که اولین شخصی که را اسم شما راموش کردم که رفته بود به کره ما در کره ما در کره ما صدایی از آن شنیده بر می گرده خدا رو نگاه اوکنید قدرت خدا. تا هم آیاتنا باید آیات و نشانهای خدا باید به بندگان برسد رفته کره ما صدای اذان شنیده الله اکبر الله اکبر و اشهد الله و محمد رسول الله و علیه شنیده میاد گردش به مصر بعد همراه گستاشه صدای اذانی میشنوه میگه این چیه صدا غریب نیست به هم میگه این صدای ارزان مسلمان هست میگه من همین صدا را در ماه شنیدم همین صدا را در ماه شنیدم سبحان الله خدا میخواد نشون بده ای بندگان غافل نباشید کافرا اینم الله علیم زراحه در دیم به راجل فاجر شخص فاجر یا لیکه کافرم بوده خداوند میخواد هدایتش بکنه میخواد حق حقشو میده خداوند میخواد اینو میگه و ما کنا منزبین حتی نبعث رسولا را. تا اینکه هدایت نکنیم و حقینشو کسی ندیم عذاب نمیدیم به خاطر همین میگه خداوند هر زمان یک شخصی موظفر میکنه که دین رو تجدید میکنه دین را به مردم بررسونه حق را به مردم بده یا اونطور بصره نرویدنا روسیایی که میاد بحث رو مطرح میکنه که بله جنین در 4 لایه قرار گرفته حالا همون بحث مضغه و نمیدونم معلقه و فلانه که در قرآن اومده میاد این مسای اشاره میکنه که بله واقعا خدا من راست گفته این جنه این من را خیلی دقیقه چطور هزار و چار سر, سر در این قرآن اومده حتما یک نیرو حتما یک مسئله غیبی بوده یک کسی که از این غیبیات با خبر بوده خبر داده واقعا هم همینه ب این جنینی که اول در رحم باقی میمونه بد آویزون میشه این مراحله که اغور بکنه تا اینکه بیرون میاد اگاه بکنید سبحان الله خداوندی که بخواد بنده را هدایت بکنه اون بچه نوزاد وقتی که به دنیا میاد خرما را بگیبید تحنیکش بکنید میمکه سبحان الله کی رو هدایت کرد که پسان ماده را بمکه کی هدایتش کرد کی او را فهمید فهم داره این آیه هست این نشانه هست این بچه ای که اقل نداره چطور فهمید آیا خود به خود انسان میتونه بفهمه این نوزادی که اصلا نمیدونه چه بیچیه از رکه مادر بیرون اومده آه از اوناله نمیدونه چیه هیچی نمیدونه ولی هدایت میشه شیر خوردن شیر مکیدن این قدرت ایک قوانی که خدا گذاشته بعد از اون برم دفش بکنه قدرت خداوند که میخواد به ما عاقل بکنه، میخواد ما را بفهمه، عاقل باشیم. بین بی آیات قرآن نگاه بکنیم این شطوری که مثال میزنه، این خورشید و این ماه و این ستاره و اینها برای چی گذاشته؟ این کشتی، این آب، یه ای روزی، یه دی روز دیروز بوده نه پریروز. از بنده از یه شخصی گفت. گفت که من اینجا یه تعجب به خاطر من. چرا خداوند در قرآن این همه مثال و دریا میزنه و بحث فلک رو میکنه و بحث کشتی رو میکنه خداوند چی میخواد بگه؟ میگه چیز جالبتر از آب نبوده این آب چه خاصیت داره که خداوند؟ این قد مثال میزنه بازش در قرآن آب رمز زندگی است آبه که همین انسان ساخته میشه با اون آب همین بله نطفه ای تو یکی که ما داریم همین آب آب نبود این اینو هم نبود آبه که همین دریا بخار میشه بعد بارون میاد دنیا سر سبز میشه همین آبی که ما میتونیم نفس بکشیم همین آبی که ما باید با اون زنده بمونیم اگر این آب نبود خدا میدونه چه چی چیز میتونه جای این بیگیره فکر نکنم چیزی میتونه جای این بگیره چون اگر بخود خداوند میگذاشت این آبی که هست این دریایی که هست یک وسیلهی شده برای این که ما راحت تر به هم دستیبه پیدا بکنیم همین آبی که هست در زیرش چقدر ملیاردها ماهی و نمیدارن مخلوق در خودش جا دازه خب خداوند عظیمه خداوند به خاطر عظمتش به یک عظیمی اشاره میکنه و به یک نشانه بزرگی به من هدایت میکنه اگر مثال به کوه میزد میگفت کوه نگاه بکنی تو گفت کرو درش ماهی هست گوه بدرگه لیکن حیبیت زندگی نمیدونم اون نشانه هایی که در این آب نهفته هست این عظمتی که در این آب نهفته است در کوه نیست بخاطر همینی که خداوند به آب مثال میدنه این آبی که همه جا هست در سحرا شاید بری که نمیدی لیکن آب در آنجا بهش نیاز داری این آب رمز زندگیست بخاطر همینی که خداوند بیگه که چی از آب زندگانی را ساخ همه چیز را از آب ساختیم. خب، این عقله، این فهمه، این شخص، یک مهندسی بیشتر نبود که از این سؤال کرد. خدا این علامت صفحامو درش گذاشت. چرا این آب قرآن را بقید مطالعه کرده؟ در این آب یک رمزی دیده، یک علامت صفحاموی. چرا خدا این این حمزان را به آب زد؟ خب همین خوبه، همین یک وسیله هست برای هدایت شدن، وسیله هست برای شناخت خدا، یک مسئله هست، نمیدونم امشب وقتش بشه بهش اشاره بکنیم. دلالت عقل، دلالت فترت که خیلی طولانیه. سنیم میکنیم چرا در چندین جلسه به مطالب مهم فترت و نقش آن در شنافت خدا اشاره بکنیم. وحیثی هست اختلافی، اختلاف در مسئله فترت خیلی شدیده بررسی رسیم میکنیم اشاره. هم احالی، هم اعتقاد مخالفی و اعتقاد اهل سنت، و قول راجع میمونه از عدله در وحدانیت خداوند دلالت شرع و دلالت نقش همین کتاب های آسمانی که هست همین تورات و همین انجیل و همین قرآن که ما داریم همین خبرهایی که در قرآن هست واقعه موسا و فرعان و نمیدونم ابراهیم و این قصه هایی که در تمامی کتاب های آسمانی نقش شده خبر از نمیدونم از دهان به دهان داره نقل میشه در زمان پیانبرم صلی اللہ علیه و سلم مشرکین هم کبرهای از ابراهیم داشتن مشرکینی که میرفتن به منا و عرفات مشرکینی که خدا نداشتن مشرکینی که از بعد از اسماعیل پیامبری نداشتن بیکن چون دهان به دهان نقل میشد قصه های پیانبران پیشی از ابراهیم و شعیب و هود و حامان و غیر گرفته شده از اون اقوامی که حلاک شد از قوملود و غیر همه دهان به دهان نقلش می به خاطر همینی که رسولا وقتی که از این قصه های واقعی خبرداد اصطوره هاست افسانه های قدیمه چون می درسن این افسانه نبود این حقیقتی بود که نقل می شد سبحان الله متاسفانه بعضی همچون سروش پیدا میشن. با این وجود که خداوند ملامت شدید میکنه بر این مشرکین که میگن اینها افسانه هست ملامت شدید بر این مشرکینی میکنه که میگفتن که این قصه های ابراهیم و نوح اسطوره و افسانه هست ملامت شدید ولی که کفر نفاق با کفر و نفاق اونها رو سرزنش میکنه و اون ستروش ما بلند میشه میگه این قصه ها افسانه هست حقیقت نداره یعنی میخواد بگه خدا من درو گفتم تو داستان خودمون دروغ این میسازیم این قصه ما حقیقت موسیی که نبوده ابراهیمی که نبوده این مجرد خواب و خیال هایی هست افسانه هایی هست که محمد از ذهن خودش ساخته محمد یک شخصی بود همون قوله دینیی که علما تکفیرش کردن نبوودش اقتصابی بوده این قرآن از دستاویخت از ساختار محمد خودش اومده این قصه ها و داستان ها ساخته که ما را تشویق بکنه عقل ما را بسازه بله این چنین هست این چنین چیزهایی که که باعث قرآن نمی‌خونه پیامبری که صلی الله علیه و علی بود نمیتونه اسم بخونه نامه میاره علی رضی الله عنه میگه اسم الله کجا نوشته که من خودم فاک علی رضی نمیشه که اسم رسول الله رو فاک میکنه رسول الله میگه من خودم فاک میکنم چطوره که این پیامبر علیه الصلاه و السلام بیات افسانه افسانه بزنه رسولی که نمیدونه شعر بگه و خدامند این توفیق شعر بهش نداده بود به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نگران روزی این پیامبر شاعر بود یا کاتبش یاد داده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یقین می‌کنه تا اینکه بره در صحرا بزرگ بشه تا اینکه ما کسی نباشه که ماجراهای بهش تعریف بکنه افسانه های بهش تعریف بکنه این تهمتی که بهش می‌زنید خب کی بهش یاد داده در شهری که نبوده صاحب کتابی که نبوده صاحب انجیلی نبوده که بیاد باهاش صحبت بکنه چی بوده رسول صلی اللہ علیه و سلم سالار بود رو میورده و میورده برای چی؟ سفتش پاک باشه دلش صاف و پاک باشه دیگه فردا نگن که این شرط کسی به اشیاد داده بله خدا من خواسته این حکمت باری تعالی است که در رسول الله صلی اللہ علیه و سلم نهاده تا اینکه که ما این فکر بزنیم تا اینکه ما عقل باشیم خوچطور میاد این چینیم قرآن به فرد از قول خودش اختراع میکنه میتونه از ذهن خودش کجاست شما که میگه پیانبری یک حسابیه کجاست اون شخصی که به دره پیامبری رسیده منظور حلاج که نتونست از خودش دفاع بکنه و برای دار آویخته شد ولله الحمد توسل الهدین ایبی یا جهنم نصف... یا جعد الدرهم که توسط خالد و کشته میشه یا المقتدر الثقفی کجان اینهایی که ادعای ربوبیت کردن و سالم موندن هیچ کدومشون نیستن بله باید کشته بشن چون بر ناحقن بیکن رسول صلی اللہ علیه و سلم باید محججش خالد و مخلط باقی مونه چون دعوتش بیدتایی بیر خدا من بود پس دلالت شرع دلالت این قرآن و این سنت مصطفی صلی اللہ علیه و سلم یکی از قوی ترین عدله بر اینکه که خداوند یکتایی هست که باید پرسیده بشه ام اتخذ من دونهی آله هست قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوشي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هماش توحيد لا إله إلا أنا فاعبدون هماش توحيد بدعبات بسية إيقانيقية ويكتويبي خضوان دان توحيد عبادة فرستش خضوان دان ها در ذکر اممعی ببینید پیانبران پیشین امت های پیشینی که با خداها مبارزه کردن به کجا رسیدن و چه بلای سرشون در اومد از جمله براهین و عدله دلالت حس دلالت احساس انسان احساس انسان چطور؟ ما میبینیم انسانی در صحرا انسانی در دریا سوار کشتی و قایق سوار لنچ و فلانه خدا را دعا میبینه مر را با چشش میبینه ولی که دست به دعا برمیداره و نجات پیدا میکنه این شخصی که دست به خدا برد. ما خودمون چقدر مشکلات رو داشتیم چقدر خدا ما رو نجات داد کم بوده چقدر ها و چقدر چال ها جلو به بود و خدا ما رو نجات داد و خدا ما رو به اینجا رزن چاله های چالا، گمراهی رو نگاه بکنید از وقتی که در مدرسه کفر و الحاق تا حالا در جامعه و تلویزیون و فلان این همه کلان های فساس این نجات خود اون کشوندن خدا به که ما رو کشند به این مسجد برای شنافت خدا مگر کمه احساس انسان این احساس میخواد انسان انکار بکنه بخاطر همینه که خودواند میگه حتی اذا کنتم فلپلکی و جرین بهم بریش طیبت فرح بها تا آخر آیاتی که بحث انسان میکنه که اگر در تنگنایی قرار بگیره دست رو کجا بالا میکنه دست رو کجا بالا میبره فقط الله کسی نبوده که در اینچین مشکلی که اگه یه نکنه کسی نبوده که خدافن اینچین احساسی بهش نده همه از وقتی کوچیکی من یاد دارم هفت ساله گرفت سه تا دو, دو ساله گرفته از همون دو سالگی وقتی که افتادم به زمین گفتم ای خدا ای خدا ای خدا تا حالا غیر از خدا کسی دیگر رو ندیدم. وقتی کترکنی خدا من دست پدرم می رفتن این گوشه ای خدا فقط تو من رو داری تو از دل من با خبری. من خودم دارم میگم از همون دو سادگی. دیگه چه برازه به اونهایی که به عمری ارشون گذشته میخوان این احساس این کار بکنن؟ میخوان فردا جلو به خدا بیام بگن؟ که ما ای خدا تو رو ندیدیم ای خدا ما تو را نشناختیم ای خدا دلیلی بهمون من بیا مردی جلوه به خدا بید این احساس تا این کار رو کن مردی بگو خدا حدیثی نیومد مردی بگو خدا قرآنی نبود فردا خدا دردن من میگده و این قرآنم میاد و گواه میده ای خدا منزودم فهم منم بود بی که نخواستم بفهمن نخواستم بخوند و نخوندن منتظر باشید. این قرآن حجت بر ما نباشه حجت بر ما و علیه ما نباشه حجتی برای ما باشه نبر علیه ما این از خدا بخواهید که این قرآن خواهد اومد این احساسه از جمله احساس معجزات پیانبرانه که خالد مخلط باقی مونده بله فیلسفانی از همین جزیره قشم خودمونم پیدا میشن که جلوه ماها بیستن و بگن وانشق القمری حاصل نشده بلی از همین خود, خود, خود قشم خودمون اشخاصی پیدا میشن که متأثر به فکر آقای ابن سینا میشن اینقدر بزرگش میکنن فیلسف و طبیب بزرگ که بیان چی؟ که وانشق القمر را کار بکنند لیکن اب الله الا انیوت منو رحمت خدا من خواسته بر تمامی این خواسته های بند بندگان خواسته که نورش به خلبها برسه نورش به مرض ماها برسه ببینیم همینه هایی که منشق القمری که مشرکین در طول تاریخ اقرار کردن اونهایی که در شام بودن و آمدن به حج گفتن که ما هم رؤیت کردیم که ماه نز شد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره به ماه میکنند و ماه نصف میشه اگر موسی زد به اون آب و اون دریانت شد رسول الله معجزه بزرگتر از این رو خدا بهش داد تا بگه بربندگان کسی بزرگتر از محمد در میان انبیانی اشاره به ماه میکنه ماه نصف میشه تا همه مشرکین و تمامی خلق در اون روز ببینن که این معجزه کار بنی آدم نیست بله فیلسوفان 1400 ساله که میخوان انکارو بخونن که این منشق القمر کجاست کجاست انشقاق القمر کجاست این ماهی که نز شده بله ما در خود تایت ناسا رو دیدیم همین ماهوره هایی که فرستاده شد میبینیم که بعد از مدت یارا اکسان رو پنهان کردن اکس گرفتن خودشون هم نمیدونن میگن ما در تیه بررسی در بررسی دقیق ماه دیدیم که ماه یک شیار عمیق وسط این ماه هست، کره ماه که این ماه وقتی که روی هم قرار گرفته نصف کره ماه، نیمه ماه، پاین نیمه دیگرش بالاتر از دیگری این ماه دقیق روی هم نبوده این ماه نصفه هست شیاری از بالا تا پاین پا در وسط ماه هست و غیر از این، این ماه دقیق اگر کربی بود اگر همونجوری که میگن در اثر انفجار حاصل شده، باید مثل زمین همبستگی و همدستگی درش بود، هیچ جا از دیگه براثر چطوره که این ماه اصل اکس اصلشون هم خودشون انداختن تو سایه خودشون. الانم شاید پیدا بکنید ولی خب مخفیش کردن. چون یک دلیلی بود برای ماها که میگفید برید نگاه بکنید شما که انکار میکنید این معجزات حضرت الله صلی الله علیه و آله و شده غیر از این قرآنی که هست. غیر از این قرآن معجزه‌ای که خداوند میگه بیایید ده نفر بیایید 100 نفر بیایید همه مخلوقات جنه عز و جل بشید یک سوره مثل قرآن بگید نمیتونید و نخواهید توانست نمیتونید یک آیه مثل قرآن بیارید حالا غیر از این قرآن همین ما خب حالا چیکار میکنید ما سره کله میذاریم با متذله و غیر حالا این فیلسوفان بیگیدین جواب خودتون شما این همه کمه را این کن آیا بیاید تصدیم قرآن بشید بازم نمیخوان بشن این جهوده این استکباره و بها و جهود استنکار و استکبار بعد بگید نه اینا که دین بهشون نرسیده نه اینا بهشون کافر نگید دیگه آیا موجزاتی بیشتر از این کی هست و کی غیر از ادعا کردند که این ماه دونست شده در قرآن در سنت مصطفا صاد الله علیه و سلام این نشانه ها هست این احساسات هست درست خیلی چیزها ما ندیریم اون دستی که چشمه میشه ده هزار نفر از در جنگ تبوک از اون چشمه میخورن بله موسی در با اسازش 19 چشمه نمیدونم چشمه ها سرازی شد رسول الله معجزه ای برا طرف اون رو خدا من بهش داد دستشو تو آب میذاره ده هزار نفر اگر اونجا 12000 تا نفر رو نمیدونم چند هزار نفر بودن یک لشکر از یک دست از یک جثه میخورد بیرونا اومد از آب از سنگ ممکنه لیکن از دست با عقل نمیخونه ولی خداوند خواست معجزه ای باشه که بشری نتونه چین کاری بکنه یا لا این مختار از قبی مرده نمیدونم مسلمه کذاب بیاد این چنین معجزه هایی رو بکنه بیاد اونهایی که ادعای خدایی و ادعای فلانی ادعای پیامبری میکنن این معجزه هست این معجزه بزرگه نقل کردن ما هم دیدیم بر و چشم بله امکان فضیره چون بزرگتر از این امکان فضیل بود همین ماهی که هست همین قرآنی که هست اگر ما ببین احساسات نگاه بکنیم این چیزی که در حس با چش خودمون می‌بینیم قرآن رو با گوش خودمون می‌شنویم در دل ما تاثیر می‌ذاره همین رقیه که میکنیم مریض مشفا پیدا میکنه همش خاتمشه خاتمش قرآن کلام نیست قرآن وحی الهی است که باید با اون تفکیم پیدا بکنی باید مریضی ها خوب بشه با چشم خودمون دیدیم اگر کسی ندیده بیا تنشونش بدیم بله این احساس ماست این ترک ماست که خودمان در ما گذاشته میمونه الله انشاءالله الله به توفیق باری تعالی دلالت عقل و دلالت فترت برای جلسات آینده مطلبی Subhanakallahu wa hamdahu subhanakallahu <laughs>